شاگردان محترم، ای در مردمی پیرامون گرونی هندونه در شب گلدا و کشف مقصدی اصلی این گرونی به اتفاق جابسرنگ مشغول دستگیری عوامل این زایعه اصفار هستیم. تا اینجا کار می به فروش مربوطه علاوه کامیونداری که میوها رو حمل هم و همینطور یک فقط ابرام مکانیک و نازی خانم بوتوکتان دستگیر شدن الان تو مغازه قصاب گرون فروش هستیم که به نازی جون گوش رو جرون انداخته. در حال حاضر جابسرنگ مشغول گفتگوی سمیم با آقای غصاب هستن که توجه شما را به این گفتگو جلب میکنم نه آقا نه ما زیر بار این اتحامان نمیرین مگه شعر هرسه آقا صدا بیار پایی من میدوزم و دهنی را که سری ماجیغان رو نره بزنه واسه من صدا کلاف بکن. <تصحان> هنیم. <ترهنگ> سراغی باید چه خراب بکنیم؟ و من گفتم گفته گوش حمیمانه. بذار بله. توی سالات من جزیره است. مجبور. <مجلح> ازاینهم زایی یهشیا خدا نباشه داغ. ارت نب... باش شما میگم <مجلح> بوقتی گو چرا گوش دهیم وی پنجن تو من باردی بالا. تا نگفتم قبولیم به براناتا. بالا بی تقصیری. همین نیروز رفتم یه سال ماس خسaran. این ماسفندیه بی انصاف یه سلط ماست و رو هفت و با و سمون اصاف کرد هفت و پونسد اینجای با باشی چی کار می کنی می پایین این راست میگه من تایید می کنم واقعا سر بی تخصیره این کارکار کار لبنیاتی هست آه. هفت و پونسد آقا می داده بی دا. نشونی این یارو ماسبنده کجاص آقا همین سر کوچه بغل فروشیه قربون دهنت ما مردیم از وزن این توپ فوتبال از این به اون ور چه این بغل بریم بریم بغل مرغی همون جایی که هستی واسه ما این دو قدم و پیاده میریم رابیا بقا آقا بریم ولی جناب سر. ما هیچ کاری میم اینجا ای بابا ولک. والا به پیر به پیغمبر نه این نه نکمه الان این ماستاره که اینجا قطار کردی تو یک تلی چما چم میفروشی این چرا اتیکتی قیمت نداری این چند دین؟ آقا جو چند دفعه بگم شما بخالت نکن این بزرگ پی پولیس است که بر خرط کنه چما باعث آگا به ببین من در تمام مراحل خطیر این معمولیت پا به پای پولیس میدم حالا اد که رسیدیم به سرچشمه باید من واقعاً سرحن. درستن درستن سرحن. بعد من اینجوری جایگویی باهش میکنم واقعی اجازه اجازه بدش نکن خب بگو بیم چرا آقا جون ما ستا ساعتی هفتا پون ساعت میفروشیم جناب شما؟ سرن شما میدین ما شیر کلوی چند میخریم نه نمیدونم وقتی دامدار یه شبه کیلوی خدا خداتم هم میکشه رو قیمت شیر خامش آه. ما هم مجبوریم یا آب ببندیم به شیر و ماستمونو بفروشیم آه. یا گرون کنیم دیگه قرمون شکلت شما باید یخه چپونه بیگیریم از یب حکایتی سا اصح... این چوپونی که میگی کجا حالا؟ اول جاده دماون نرسیده به جا هی ای بابا ای بابا میگم سرهنی حالا که ای بچه ها جمعن ماشین هم داریم ون داریم و اینا میگم از اون برد بندازیم بریم شمال دیگه درست جمعی بریم والا. آقا جو خجالت بکشم ستی معموریت شمال چی چی شما میگم جونه تو سرهنی کباب میزنم برات با لبات بازی کنه آه. ببین عراقم ندیفا، شریران بله. میبینیم پیش ارشاک، عراقاش حس نداره، سر همین میبینیم از آلشاک عراقی میگی. آقا زشتت عزیزی من کاری نکوام میالا خودت تا دستگیر کنم جای مقصری هستی. خجالت بکش. با خجالت خودم مارگی پاکوتا، مارگی پاکوتا صدا ما دارین؟ سری ازام شو موقع یاتل بنیاتین. خودت تاک میلی تحقیقات شما باز هم راه ما میای آقا جو. بفرمایید بریم آقا. بفرمایید. سر ما بی تخصیریم همه اش تخصیر گوزفنده یه مادره که تا هفته پیش روزی چیر شیر می ما یه اصلا هفته کرده که بیشتر شیر نمیده، ده خب ما نزدیک شبه به بید مجبور شدیم یکم نرخشی رو ببریم بالا که بتونیم هندونه بخریم نه مقصر ما نیستی مقصری ای گوزفنده این اینکه نده که با تازه بابت هم شیری هم که داده بازش تغییر کنیم با اوناک او عوکیو او میگیم خوبی او دو کوشکاری دید ها من بجه قبل از دستگیری من یه مصاحبه با این تشومه ای فساد اقتصادی داشته داشتم شما به خانم گوشفندی در مقابل دوربین ما اعتراف کن من قول میدم چهلتو شطرنجی کنم ببینم شما گوشفندی همه در رابطه با گرونی گفتن نه شما چی داری میگی آیا به مقصر بودن خودت اعتراف میکنی ای پس قبول داری که بقیه بیگلا دیگه و شما مقصر اصلی داب و گلانی در کل کشور هستی ای بله عجب گزارشی شد سرنگا. م... میگم سرنگ تا دودبین هست و مجبم داره تونتون اطراف میکنه بیا اون دکل گم شده و اون سهزار میلیارد و اینا را کنیم این قبول کنه پرمندش بسته شده دنبال کرش دیگه آبایی این چه حرفیش شما بیزنی آخه قندی مارگی پا کتا یعنی چی چرا این جواب میدهد آقا بزیر ببینم بزیر ببینم قندی سرهنگ ایویر ایویر سرهنگ بجون بین گفتم این داره به همه چی اطلاف بیکنه ای سهر مار بابا تو بله میکنی گفت کاری بابا این اطلاف سر خوده سرهنگ همینجوری داره اطلاف بیکن قندی قدی بیا شب اول زم سون تو ی خونه پرمه مونا با تموم سردی اینشاشب پر گرمی دلاموننا صحبت از گذشته ها از همه خاطره ها مو آسممون نم نم روی شیشه بر بابارونو شبدامو کل آرزو ها و, و, و زیبییه دنیا و تقسیم می با تو آرامش این سالو دل چسبی این حالو مییتتم تو حرف حالو تقسیم میکنم با تو شب یادامو کل تو هو مو زیبایی دنیا ما تقسیم میکنم با تو دل چسبیه این حالا آرامش شه این سالا نیتم تو هر falo تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو